زینب کبرا هم اگر نبود شهادت امام حسین از رفته بود اگر پیغمبر گفت حسین و منی و انا من حسین شخصیت من بسته به حسینه او باید بیاد برای احیا کند اگر بگیم امام حسینم بگه زینب و منی و انا من زینب من هم زنده شده یک بیان زینب و امام سجاد علیه السلام هم. که اگر نبود اون زبان کی این شهادت من به دنیا میرسید که عالمگیر میشود و نزا خیلی کار کرده این خانم. آقا گفتانش خیلی آسانه بگیم در کوفه سقنانی کرده آخه ایگرده ما میگیم میشنمیم ما دقت دقیق بفراموید چه عظمتیه چه قوت روحیه از روز تاسوعات تا روز دوازده هم خواب به چشمش رفته <تصفيق> یعنی شب آشورا بیخوابه روز آشورا بیخوابه شب یازده بیخوابه روزی از دهم بیخوابه، شب دوازدهم بیخوابه، روز دوازدهم میخواد صحبت کنه، میگه که خواب نکرده، چه شبان روز بیخوابه؟ از خ... بیخوابن چیش میبره آدم رو؟ فکرش کار نمیکنه، وقت گروسته هم بوده، هشته هم بوده، مصیبت ها دیده، چند برادر از دست داده، دو فرزند از دست داده، تازیانه ها خورده، از یک طرف بچه ها باه پرستاری کنه. امام سدجاد علیه استرام پرستارشوند با همه اینها تو شهری که تو شهره توی ملس هم نیست خیابان بازار اونم قلقله و گوغا و ترل میزنن شیپور میزنن حلهله سپاهیان و بعدم مردم هم جمع شدن پشت بامه ها کوچه ها خیابان ها مملو و از زمیت گوغا خب کسی با خب صحبت میگه میشه سخنرانی کند عادی واقعا موجزه است اونم سخنرانی عادی نیست یه صحبتی کند که تا روز قیامت بماند متفکر روش فکر کنند جمله به جمله او رو معنا کنند شرحش کنند آیا اجاز نیست؟ این خرق عادت نیست؟ که حالا اون شرح پرگوه رو خاموشش کنه و حرف بزنه همین گرد ال الناس انس تو. با این همه شرایط اشاره ای کرد ساکت همین گفت ساکت همه ساکت ارتدت الانفاس و سکنت الاجراز این نفس ها در سینه ها شد زنگ شطور ها از کار افتاد یعنی وقتی انسان ها متوقع شدن ده هرم مرکب که ایستاد زنگ ها دیگه صدا نمی کنند ایم. اما چه اراده ای؟ تشرفی ما هما میگیم و میشنویم دیگه. با یک فرمان اسکوتو او معران ناز اسکووت به فرمانده قویه ساکت خب همین یک جمله همه سکوت کردن. ناگهان صدا بلند شد در بلندگو هم بلندگو هست میگه اونجا الان بلنگو نباشه یه مدید مثلا 20 نفری نمی رسه. اون عجیب تو اون شهر آیا اجاز نیست. اصلا خود این جملات را گفتن و با این حال سخندانی کردن و اون سخندانی عجیبی را و شروع کرد مردم چون صدای علی در گوششون بود آشنا بود سالها در پای منبر امیرون مونین بودن با صدای علی آشنا هستن اهل کوفن نایوهان دیدن صدای علی به گوش میرسه جملات در سلابت بارند جملات علی صدا صدای علی تعجب کردند ناگاهان دیدن یک زن در میان محمل بالای اون فطور ویجهه ها سخن میگووییم سخن آتشین سر کوف داد به اونها که ها کار نمیخوام جمرات رو عرض کنم. ولی کم کم امام سدجاد در سرام دید امه دارد شورش ایران میخواد زمینه را به وجود بیاورد چون گوگایی شد در کوفه دیگه زنها زدچه کشیدن ها محاسن خود را میکندند، تو سر خودشان میزدند. امام سدجاد دید امه دارد زمینه شورش را به وجود میآورد. فعلاً سلاح نیست باید بکر شام برویم مرکز را باید منقلب کنیم باید او بروید در یزید صحبت کنند. باید امام سجاد بره در مسجد عموی صحبت کنه هر روز زوده باید به مرکز برسیم این بود خطاب کرد یا امتو اسکتی امه جون بس دیگه ساکت باد خاموش باد یا امتو اسکتی انته به الله آلمتون غیر معلمت فهمتون غیر مفهمت به الله تو دانائی هستی آلمی هستی که معلم نمی تو فهمنده ای هستی که نمیخواد کسی به تو حرفی بفهماند هست فعلا ساکت با ناگهان مردم دیدن لحن سخن عوض شد دیگه با مردم حرف نمیزنه مخاطب دیگری دارد ما توهم یا آشقی فعادی کانه هادا مقدر مکتوبا دیدن دیگه با سر برادر حرف میزنه